برحبت مجمعی که یا از که که در اینجا بعد از مبارزه صابر آقایان متعرض شدن در ضمن ابحاص قد به اصطلاح همون مسئله معروف قطع حاصل از غیر از مقدمات شرعی از غیر دهدلی لحظیه مثلا قطع حاصل از قیاس و استحسان و مشابه به حلاله. و این محل کلام واقع شده و اخباری ها نسبت داده شده که قطع حاصل از این ها حجیت ندارد غیر از کتاب سنت و آیون اصولی ها مخصوصا از زمان شیخ به در این بحث دیدم که اگر قرد حاصل شد چون خب جیت ازادی سر نمی کنه از چمان باشه این بحث در اینجا به این صورت در زیل مباحث قرد قرار گرفته لیکن اصولا در متعارف اصول به طور همون قائله محرور که ادله احکام چهار تا که چند قرد عقله کتاب و سنت اجماع از اون زاویه هم مورد بحث قرار میگیره که اولا خب مراد از در اون اصطلاح چیه و دلیل بر اینکه جزء مصادر تشریع هست چیست من یک اجمالی از در نحوه بحثی که الان ما اینجا داریم در این بحث قرار به این شد که اول کل کلمات مرحوم استاد راهی خویی خونده بشه بعدم مثلا کلمات مرمو آزی و مرمو آین بعد یه تحلیل در مسئله این شما این اجمالش و اما قبل از رو در بحث اون بحث معروف که به اصطلاح مسادر تشریع و چهارسانه اینم اون مقدم است, است که بحث بعد متعرضش میشه چند بار من از کردم که در زمان صحابه مخصوصا در زمان دومی هم به خاطر طول زمان و هم روبرو شدن با مسائل جدید و دنیا جدید و فتوحاتی که در اسلام واقع شد یه مقداری این سوالاتی اساسی که برای مسلمان ها پیش آمد اینکه خیلی از موضوعات احکام خیلی از موضوعات جدید باشون روبرو شدن که معتقد بودن حالا جدید یا غیر جدید حتی قدیم میشن بود که معتقد بودن در کتاب و سنت نیامده اون نکتشی کتاب و سنت نیامده نیست چون نیست باید برایش ایک بکنن این چاره رو یا خود شخص حاکم میکرد و نظر میداد که از اون تحبیر به رعی میکردن مثلا, مثلا رأی ابو بک اینه رأی عمر اینه مثلا از ابو بک در باره جده جد نمیدوند ست تا قضیه چند تا قضیه نرد سوال میکردن. ای میکردن این روز اینطور بودن چون در قرآن در کتاب و سنت نیامده احکام مختلفی رو راجع به جد میگوستن کذالک در زمان و عمر هم همینطور بیشترین بس مثلا زمان و عمر بود فرمسیم مثلا آیا خمر حد داره یا حد نداره از مسائل شربخمر حدش نه در کتاب آمده در سنت آمده و فروه خیلی دیاده حالا یعنی تمام فرق نهی که به اسطحان مواده قلیلی نستن که منصوطه یعنی هزاران فرقی که در فرق شده موارد خیلی کمش در توکار بسنده منصوطه بقیه رو سعی کردن از روی قواهد به اسطحان استنباط بکنن استخراج بکنن یعنی فرقی مثلا میگن در که قواهد شست و سه هزار فرق حساب کردن اگر این محطب درست باشه که یکی اصلا سیده فرشه با یک لعابطی از واخر بعد از آیات که تا ممکنه از کبیرش استمباطات و استظهاراتی باشه که حضرات انجام دادن و از راه های مختلف و نکات مختلف حالا هم سابقا اشاراتی شد هم در خلال بحث ها اون وقت دو تا انصر از عناصر جدید در مصادر تشریح در زمان عمر اضافه شد یکی همون رعی ها که که از در قرن اول به او رعی میگفتند در قرن ثانی او قیاس میگفتند. و این قیاس که بعدها مشهور شد اون تمثیل منطقی این نیست از از دیگه مواردش هم اون تمثیل منطقیه اما ایده از مواظه ریاض خیر از تمثیل منطقی همین روایت ابان که امروز ان می‌خونیم الله تعالی این تمثیل منطقی نیست معادل امام میخوان یا ابان اخر سنی بود که ریاض تعبیر به کار برد که تصویری اونجا از دوو که عمر یه مجمع مشورتی داشت و اونها مشورت می‌کرد روزی 3 نفر بودن 15 نفر از 15 از بزرگان مدینه یعنی امسان. مطالبی رو مطرح می کنند توافق با عنوان این به اصطلاب اعداد اجماع اهل حل و بزرگان نظام خواله هستن به این مطلب لذا حکم ثابت می شد. این ریشه اجماع شد اون اولی ریشه قیاس شد دومی ریشه اجماع شد گاهی اوقات هم حکمه عقل رو اینجوری معنا می کردن پس ورود دو تا انصار اجماع و عقل یا اجماع و ری و قیاس در حقیقت از زمان دومی شروع شد و یک زیربنای مشترک داشتید من چند مدر شهر در حال شهر همدان طورانیه زیربنای مشترکش این بود که اده زیادی از احکام در کتاب و سنت نیست ما باید به این وسیله اونا رو پیدا بکنیم دو وسیله اجماع مسلمان اجماع اهل حل عب. یا به قیاس و رح این خلاصه این ورود این دو دونطور در دنیای اسلام بود خب بعدها محل کلام قرار گره مثلا بعدها ده از اهل سنت زیر اجماع نرفتن زیر واره ریاض هم نرفتن مثل ظاهری ها مثل ابن حد البته اجماع رو در حد صحابه قبول کردن ظاهری ها میگن صحابه اجماع کردن چون اجماع اونها کاشف اونها کاشف دارن مثل ما شیعه هم یهاشاش برای بر که گفت از قافل عرب نیخته اجما رو عنوان کاشف قبول کرد اون بحث قد خیلی بحث عقل خیلی واضح نبود در کلمات موارد مثل تمسکه به اصول بود مثل اصافره این تجلی او بیشتر بانوان تمسکه به با اصول بود خیلی واضح نبود در کتاب اصول متاخلشیه اون مسئله تقریبا به شکل همون قاعده ملازمه کل ما حکم به لعق حکم به شر مطرح شد که ظاهران این هفته یکی از ترسیب میشه نمیرسیم اونجا و که این یه اشاره ای اشاره تو ما از کتب قدم های اصحاب و نحره بحث پیشونها باز بیاد شده به زمان جد میشه احاطه پیدا در زمان شیخ به بعد مثل همین کتاب مرموم استاد و دیگران این یکی از مسائل بحث قد گرفت من از کردم در ابتدا ما مبحثی را به نام بحث قرد در اصول نداشتیم نه در اصول اهل سنت نه در اصول شیعه صف ما چیزی برام بحث نداشیم مفاتیح اصول یک مقدمه راجع به وجوه بحث و وجوه نظر اوغلا قبول داره شک همون مطلب رو توسعه دادن و بعد مسائل رو یا به ساز تنبیحاتی برای این مطلب قرار دازن و این کل مبحث و مرحوم شیف مقدمه قرار دادن در رساله حجیت و مدنه رساله نوشتن باید حجیت زن مثل مرحوم صاحب مفاقی نوشتن مقدمه در مقدمه. اون در غر هم مقدمه اون در قدیمی قدود اون شاقه قدیمیشان میم سفه نوشتن سه چارمون صفحه نوشتن مثلا دو سه اون نوشتن مرحوم شیخ دو حال دو سطحه دو سطح و بعد هم مباحث فراوان رو با تنبیه ها که بعدها از کلمه سال شیخ اینجور بود و از ها ترسول احتمال خود شیخ دیگه چون که ما از سال شیخ داریم زارن تساروازه بعدی ما مال خود شیخ خود شیخ جای عمل مقدم فرقه نایشن مقاصد سلال فرقه مقصد اول فرقه یا درست جزا وصول شینتاش از نمافت اصول نه ورود از مقاصد اصول نبود الان هم مثلا تو کفایه‌ی مقاصد نیست مقصد ششومی کفایه حجج و احماراته توش بحث قد به مناسبت مطرحه یعنی مقدمات باشه و مقصد هفتام که اصوله مقصد هشتمشان هم که, که, که, که کلا کفایه هشت مقصد قراره این که بحث قد باز هم در نسخه کفایه به عنوان مقدمه اومده اما در باقتی رسال بعدها بعد از این الهاقیه به صورت مقصد شد و این تنبیهات هم تقریبا ها شد قط چه اینجوری شد یک مقصد در قطع چند تا مسئله توش هد. یکی اقسام قطعه دیگه می دارم قیام امارات مقام قطعه دیگه می دارم فرانه که این بحثه تجری یکی این بحث قطعه قطع یکی این بحثه این که اگر قبل از مقبل از از کتاب و سنت حاطب بشه دقیقه این بحث چیمون چیمون جا بجا شد دیگه در کتاب‌های های ما الان در قضع در درسی حوزه در حقیقت اگر دقت بشه همون بحث حجیت عقله جز مساله رو تشت. لکن بعد که تبدیل شد به قاده ملازمه کل حکم هاکم به به این صورت سرند در اماده. لذا ما در زمن این مبحث در حقیقت اولا اون بحث حجیت عقل و حقیقت حجیت عقل به حوشت میشه هم مرحث خواهد ملازمه که شکل دیگر اون بحث و هم این مقاله خضارات اخباری ها چون ارز کردم من چدارن ارز کردم تفکر اخباری که در فوائل قرآن زنان توسط مرحوم الله محمد استرابادی استرابازی مثلا چون اینشون مدتی هم در مکه و مدینه بودن قواعد مکیه دارن که من نایرم مازش نقل از و قواعد مدنیه که دارم و دیدن ایشان در اونجا با اینکه لدن اهل سنت دارن مسائل خاصی خیلی خیلی شلوغ یا خیلی محدود انصافا این قواعد مدنیه شو کتابیه مزه ملا از ملایس صدر زحمت کشیده این کتاب قواعد مکیه اش الان خوب میخوان اون مدنیه ش اشی دیدن بعد این کتاب کاری به خودش اینا چند تا مسئله اساسی دارن که شبیه این اخباریان هم ظاهری ها هستند ظاهری ها, هستن. ها قرن سوم ظهور بروزشون بود اول قرن چهارم هستن به فوت داود اولی افتانی محسوس مکرد زاره به نظر این طوره گشته بناتره باشد اوال قرن چهاران و شد هستن شیخ در اندلس بوده شیخ در وقتا و انصافا این های متعدد داره اما انصافا این کتابه، ابن کتاب های ابنه هز مخالفت با داوود کمه در کتاب ابنه اگه میگه به ایلیه رحب سلیمان ما ابو سلیمان داوود اسفانیه از تحریف ابو سلیمان رئیس مذهب با خودش حالا یا حاله در میان اخ... علمای اهل سنت این مکتب ظاهری که شبیه مکتب اخباری ماست از اوائل قرن چهارمه اونا هم مثل ما ها وقت اونم نکات مهمشون یعنی اون رأسایه رئیس رأس رؤوس مطالبشون مثل این اطحاب ما یکی نفی اجماع بود یکی هم نفیه استضحاب بود یکی هم نفی به اسطلاح چیه این قاعده رأی و قیاس بود مثل ما یعنی تمسک شدید به این اطحاب بود علمه ما اخباری ما این اندازه دیگه که لازم نکنه خیلی اونا مثلا کسی ما که نمازش چه روز قبول نمیشه میگه نمازش چه روز باید قضاو کنه مثلا نماز كده كده که لازم توبه و صلوات رو میگه باید قضاو کنه مثلا قضا کن. معنیش و خیلی هم تند چون به خلاف های ما که در قبول خبری مقدار تسامح دارن این تسامح نسبت به داوود مثلا به ابن حنفی تسامح تعبیر تسامح رو به شفاعت یه مقدار قبولی خبرها رو اونا نه مثلا ادنه هست که انصالان خودش هم امامون فشند در همین رجال و حدیث و اینها و اصولا در کتاب رجالیشون آرائش ذکر میشه مثلا و ادنه هست و اقا و ادنه هست بعض قبول نمیشه حرفاش نامرگوطه به اصطلاح میگیم مثلا این مجبوره که حالشو بعد از جوزه جزء هم هست از این حرف هم داره اینطور نیز که داره همه تاکه نهار اول امام انتیاذ شندار شن رو هم کلکار خیلی مرده پرکاریه انصافا در اندلس بوده انصافا این چند تا که ازش من دارم یکی در ملادن حل داره یکی میاد در, در فقه داره احکام در اصول داره خیلی انصافا مرده پرکار خوبه و مخصوصا خیلی با علمای اهل سنت اغلانی و شافعی‌ها خیلی هماهنگ می‌کنه میتازه خیلی تنده معروفه بین اهل سنت که زبان ابن حزم از شلاغ حجاش تیسته هر <تصفيق> خیلی تنده تنده داره اونه هست اخباری ما هم تقریبا تا حد این طور هم توی برده مثلا یکی نکته مهم بین ظاهری ها نفی اجماع و عقل قیاسه همین نکته همی که از نکات مهم در مکتب اخباری هست. این چیزی که اخباری ها خیلی روش دارن نفی عقل و نفی به استداع اجماع نه اجماع رو قبول دارن نه حکم اع، ناقضیه حاصل میشه ما فقط مجبوریم از کتاب و سنت از غیر کتاب و سنت قد هم حاصل بشه ارزشی نداره نباید متابعت رو بکنیم و طبعا هم استصحاب هم اونا نظر استصحاب راشوات بکنن کدی یکی از کارهای اساسی براعت رو در شواب تحریم قبول نمی کردن خیلی مهم میگیرند در مرحله اخباری اون روس مطالبش چیه این مذهب جدا کرده یکی از مساله براءت یکی هم مسئله قبول مهدار بیشند حد اخباره کتب عربه و غیر کتب عربه یا به نظر محبوم سال و سال از سر فسوایشون اینه که هر حدیثی که در کتاب مشهور باشه حجت نه. همین که در کتاب مشروعه باشه و کتاب غیر مشهور مثل فیغور و عوال لالی اینا مرادش اینه اما کتاب مشهور مثل کتاب صد و خسال فرم نمی کنه خسال باشه تقیی باشه کافی باشه استفساد کتاب شیط توسی باشه این کتاب مشهورهی بین اصحاب ما کتاب شیط مفید باشه کتاب کاموزیارات باشه کتاب مشهورهی بین اصحاب هر روایتی در اونها باشه در از این یکی از موارد اختلاف شد البته مرموم ملا محمد امین استرابادی اصولاً روی بحث عقل و مقدار عقل و ادراک عقل و روی اینا بحث داره اینطور نیست ولی مقدر رو ادله شرگی آور به ایشان اصلا کلن برسه همون در اون اول کتاب فواعد و و خیلی تقریبا مطالبی رو در نقد و در رد منطقه،, منطقه و فلسفه عرصوی بیان بذاره که شبیه مناقش ها در اروپا اصلا در دوره رونسانس تا یعنی برزش قبل از ایشان و ایشان در اروپا مطرح شده شما 500 سال قبل بوده دیگه ایشون 920 940 وقتیشون 939 این کتاب بود 500 سال قبل خیلی عجیب شبیه بعض از منابشات خود اروپایی در فرسبب منطقه عرصویه من روما بروزی احتمال بوده که مثلا تاثیر و تأثیر بوده یا من دقیقا شد عبادت های بود تو زهن هست یا میفهمند مثلا تقارنی بود اینه واقع چیز قری مناقشات بسیار قوی ایشون در منطق عرصیوی که مقدارش هم یک مناسبت شیخ اوازه زید شد خیلی مفصل بحث شیخ هم کوتاه کرده واضی ایشون رو ایشون عوضه هم از الکردم هم معقولاً و هم معقوله مرد واز خدادیشون مرد با, با قابلیتی خیلی حرفش قبول نظریه اما انصافن مرد مطلعه از اون زمان دیگه این بحث مطرح شد بحث به اصطلاح ماها به اعتبار قاعده ملازمه بعدها اصولی ما از اون تربیر قاعده ملازمه کردن یا تعبیر به کوجیت تعقل با عنوانه که از مسادر فشری یا همین بحث حاصل از غیر کتاب و سنت این در این کتاب بعد از شیخ انساری آمده که از تنبیهات بحث دار. حالا این یک تصویری بود از مطلب که اشمالا مطلب دستون باشه که صحبت چیه کجا بودی کجا ر از کردم من به خاطر نحوه بحث دیدم که مناسب اول تقریبا کل کلمات استاد برموهای خویی رو بخونیم اجمالا و یک توضیحی به مقدار که روشن بشه ولیتون بعد هم کل کلمات مرموی ناینیم اولو قاعدی خواهر شروع بکنیم چون حاصل اون مطالبه بعد هم احتمالا آزیا و بعد هم تحلیق شد و همیدار در نقل کلمات ایشون مروای خوبی فرمودن از کردند این کتابیشون صفحه 58 هش این بحث آمده عنوان بهش نزدن با خط سیاه درشت عنوان خدا نزدن خداهایی بزنیم عنوان بزنید یا سوشونی قاعده ملازمه یا همون پک حاصل از غیر کتاب بعد ایشون می که کلام سارت هست سغراست سغرای این کتابی قد پیدا میشه از غیر کتاب و اخرا در در و این خود جد چلند بعد ایشون که از کتاب کفایی و این نوث به علاوه اخبار این منور کبرا که کبرا رو قبول دارن قرض باشه بعد ایشون در کفایه گفته که نه با مراجعه به کلماتشون معلوم میشه که این مطلب درست نیست این اشغالشون در سقراط یعنی غلط پیاده میشه وللا که شده شد قطعه جد البته من یک نقطه ای رو که ندیدم چون از زمانی که شیخ این بحث این بحث ایلمان در مکلب علاقه تلاح حکم که زمین به این بحث هستند دو بحث و مکلب مشته ده این مشته ده خود که مشته و این صحبت ها شده مرادشم بولید بر... یعنی گذشت این مباحث من از کردم این نحوه تعبیر که مکلب علاقه تفاقه عنوان التفاق اما حسر الله این از شیخ تا که ما در همه رو نگاه نکم در کلمات قبلی در مفاتیه مرموم سید مجاهد به استاد شیخ علامه و داره که اعلم ان المشهد اضافه هست ان الادله اون عنوان عوض شده شیخ عوض هم بعد از شیخ هم مرموم شیخ و مرموم محقق و مرموم می ها و دیگران خیلی مفسر رو این خصوصی خصوصیات دست کردن که این خوب بود که ریشهای کلام روشن میشد و انصافاً عبارت شیخ خالی از اشکال نیست هم عنوان مکلب و هم القفاق بحثی که مفرح بوده بحث مشهد و فحث از ادله بوده که قرد سر پیدا بشه مثلا با اون بحثیشون المکلب ازالتف تلاحو پون شرعی فرق فرق این فرقی فرق این گذشتی در ذهن آقای باشه ورکشون میفهمند که اینها در مقام من از سقراه هستن نه کبرا چون بعضیشون در مقام منع ملازمه ببینید ده اینطوریه مولانسی دین حکم شرع و حکم عقل بعد حوادثی آورده بعد بر از کلمات مرحوم سید صدر قمی رحمه الله سید صدین قمی و از کلمات محدث استرابادی که اصولاً غلط پیدا نمی‌شه ایشون مرموم من استاد ما منقل و ان المحدثین مرکوره عبارت ایشان درسته بعضی عبارت مشهرونی می قطعه میشه الا اینکه کلام جمعه من هم فی فیمن الکبرا مثلا اونا کلامشون صریح این که این قف و جیت نداره ولای اجزو بالعمل رو از بحثی که اگر بخواییم قدیفرندی بکنیم بحث استاده اول این آیا در کلمات اخبارین من اسوار یا من کبرام هست؟ که گفته و من اسوار است، استاد میگن نهزرده، من اسوارم، من کبرام. هم میگن قرطویانه میشود، هم میگه که فیضش وجود نیست. این خلاصه، ای این فصل اول میگه شما را گذاری کن راحت حد میشه. خب این فصل رو ما هم جای توضیح داده من که شرایط که عبارات اهل سنت رو میخونی در ادیال مسائل این همیشه مشکل هست. مثلا به شیخ انصاری یک آیه یک نصا یک آیه دیگه دیگه می‌ره واسه ظاهر کلامی کلامی ظاهره خیلی انصافا این مقدار صرف در این جا میشه حالا بجای این حرفا بگن خیلی خوب بحث بگن اخباری یا نگا من همیشه ازم من استاد ما گوجوزی از استاد ما آیه آذر اصطلاح خاصی شما چون اصلا یه چیز باشه و اخباری اخباری مرگی بیاده ما اخباری نداشته سوال سؤال که مثلا هستی نفسه ما درباره به اضافه منع سور منع سور که علمی نیست. اما منع کبرا که آیا واقعا اگر قطعی از مقدمات عقلیه غیر از کتاب سنت حاصل میشه قطعه به آیا این حوپ حج... این قطع حجتی یا نه این در لایجورمه بعد ایشون میتنونه محمود سات تراجر از سایل شیخ من اعوان من انسایی برای قدر صافی نقل کلماته از کم شیخ خیلی چون کتاب هم کم درسته من منقول به واسطه از در اخلی خودشان نمونه بعد میشه میشونه چون که این کتاب در اخلی ساب جواب, جواب کفاید این بخش اول و کیف کان علما محقق شنه قل القول فل الصغرا که آیا غرض حاصل میشه ایشون حکم عقلی اولا من عرض کردم ایشون حکم عقل چه عقل نظری چه عقل عملی معنای ادراک میتونه عرض شد صابرن اجماعا درزی ها در حکم عقل عملی خب بذین اخرشو معلوم ناینم بجین بحثی داره بجین برطرف حالا فعلا من قصد طرف وصول بخونم تا بردارم به معنا ادراک العقل البته ایشان توضیح ندادن این ادراک چجوریه این ادراک رو ظاهرش یک نوع ارجاع به ادراک به اصطلاح عقل نظری حالا در ادراک عقل نظری حکم توش نیست مثلا حسب العقل نظری بسیط من می‌دونم اینجا ستون هست اینجا ستون نیست می‌دونم مثلا دکتر ستون و لاستون با هم جمع نمی‌شن اشتباهه عزیزم از اینا بگیرم بیرم تا جا با گیه بس هم در وقت هر را سمدد بداید این ها حقل نظری هم. از اینجا بگیرم در جا آروم از اون اولین مقدمه ای در حقل نظری که ازم اجتماع نقیده این استحاله اجتماع نقیده که این مثال بازه هست شما اینجا ستون میبینید؟ اینجا ستون میبینید؟ میگید نمیشه یک جا هم ستون باشو نباشه اجتماع این به شروع میشه. این به اصطلاح معروف هست اولیش تا به پایین. در باره یه اقل عملی هم سه تصور هست آره اجمالش هر بکنم چون عبارت استاد شما یک تصور اینه که اصولا اقل عملی هم مرجعش به همینه میده مثلا مصلحت هست نیست مفسده هست نیست این فقط ادراک میکنه یا به تبیر برزیار ادراک نظام اتم میکنه اون نظام کامل نظام جامع و نظام اتم الهی رو انسان ادراک میکنه که در نظام عطم مهلادی مثلا سرق هست دروغ نیست این یک تصور در عقل عملی یک تصور دیگه اینی که نه ادراک میکنه ادراک میکنه که ینبغ یعنیو خواهد و ینبغ یعنیو اتره که این خلاصه هر فرموم آی محفظه اصفانیست راه سرقم این که اصلا از قبیل ادراک نیست اون خود افعل و لاسفعله اصلا عقل عملی اونه اصلا دو معقوله، یه مقعوله ادراکه یه مقعوله نه واداهیه یعنی غیر از این که انسان ادراک میکنه صدق خوبه یه هی دیگری هم در انسان هست حالا به خاطر جهاتیه برمیگرده به حقیقت وجودی انسان ذاتی هم در اینجا به این نه با اون تعبیر که مرمو آیه محفر رسوانی تا آیه مورد ذاتیه اکتاب برهان ایسا وجیه به این معنا از وجود انسان از ذات انسان این برخواسته و اون اینکه انسان رو در تمام مراحل، حالا که میخواست فردی باشه یا اجتماعی باشه مرمون آیه سانی به اجتماعی دادن نه فردی شما همینطور اون رو واضار میکنه به کمار اون رو واضار میکنه به رشود الان هرچی اسمش رو هر بزنیم به قلون این واضاشن آی خویی ظاهر عبارتش ظاهر عب عقل عملی را از قسم اول میدونن رضایشون ایشون می کنین که سه لسمه امیو داده کرد عقل وجود در و اول مسلحته فی فعل من افعال این ظاهراً غیر از حرف مرموها شانس نسوانی هم باشه ظاهراً خود مثلا مثلا عقل درد میکنه که صدق این طور خوبه مثلا کمال است مثلا شجاعت از صدقه شجاعتم در نهجوال اغن دار این سیاه کم بالوجود بالحرمه، اول حرمی بازی مراز نه. لتا بهیت احکام شریعه، لمساله مفاسد، اند آخر الامامیه المؤخذین. یعنی اقل عملی ادراک مسئله میکنه. میشه که ادراک توانایی تازه مثلاً طبیعیات میکنه، فیزیک میکنه، شیمی میکنه، نجوم میکنه. ادراک وجود رو میکنه، اشیار میکنه. اقل عملی و نظری یکیه. این یک بند. از ثانی انیدرکل اقل اول حسن اول قب که ادراکی ایو حسنت و قب حل محصیه چون حرفاییشون جو خاصیه، من نمی کنم تعبیر بکنم در این عباسشون نمی کجا بزن انسان متحقید فیح کن به ثبوت حکم شریفی مورزه این بحث همین پیروزا خوندیم تو عبارت مرگوم استاد و من توضیحا از کردم که مثل امثال مرگوم ناینی و خود استاد. یه بحثی دارن حالا این تعبیرش اینجا یکمی ای این قضیه ملازمه در مرحله علل احکام نمیاد در مرحله معلولات میاد مرادشون مرحله علل همان فاصلته مرادشون در مرحله معلول مقام اتعاب امتثال است اتعاب مرحله‌ای آره اصطلاح تا چند درست در موقع است از ثالث ان یدرکل عقل امرن واقعی اندازه دفع کردن حکم عقل و ایشون عقل نظری را در همین خستون خورده بر ما استاد ما نمیفهمم چه اصطلاحی خودشون آرا هستند نظر النظر عن ثبوت شرع و شریعه نظیر ادراکی استحالت اجتماع نقیزه این, این که عقل نظری ایشان ما بلعقل خودشون فرمودن خلا و به مثل حکم شرعی یعنی یکونو به بمنزلت سقراط که اون حکم شرعی منزلت سقراط یسقش ال حکم شرعی فی این تفسیر ایشان در مورد ملازمات که در اصول دارین از کنی چهار مسئله رو در اصول جزوی ملازمات عقلیه گفتن یکی مراقص مقدمه واجبه یکی مراقص زده یکی مسئله اجتماع نهی، یکی از مسئله نهی در عبادات و معاملات این استلاحه ملازمات ایشون تفسیرشون از ملازمات یعنی اون تحلیلشون از اون مسائل اینه عقل ادراک میکنه تلازم به این یک شی و مقدمه شد مثلا گوش خریدن و بازار رفته هم. این رو عقل ادراک میکنه بعد از اینکه عقل ادراک کرد میگه حکم آمد برای گوش خریدن پس حکم هم آمده برای بازار رفتن. لذا این ایشون اسمش به اصطلاح به اصطلاح احکام ملازمات ملازمات به این معنا یا احکام عقلی غیر مستقله اگر تمام مقدمات عقلی باشه مستقله میگن یک مقدمه شرعی باشه میگن غیر مستقله استراحیز گذاشتن ایشون تفسیرشون اینه اینجوری تفسیر میکنند این مسئله اصولی اون مسئله مقدمه واجب مسئله نهی در عبادت یا معامله وقت روشن شد ملازمه و اون ملازمه در مثل اجتماع اما نهیو توی ضد اونها روشنه تو مسئله نهی در عبادت همیه توضیح دادن اینا تصورشون اینه نه دلالت بر زجر میکنه اینه حرمت آیا بین حرمت و بطلان ملازمه هست یا نه اگر یک چیزی و شاره ازش زجر کرد پت باطلم هست لذا ازش تحبیر کردن به ملازمه اون مسئله نهی در عبادت رو تفسیر کردن به ملازم رو این نکته چون مفاد نهی رو زجر داره حرمت تلازم داره با بطلان یا نداره این که قاعده ملازم در ما در محله خودش اند اخیان از خیم به نظر ما نهی هر داره دلالت داره هم دلالت میکنه بر زجر هم دلالت بر بطلان نذاره این قاعده نهی نه اصلا طبق تصواره جز جزو من باعث ملازمات نیست اما آقایی می دونم محسن عرض کردم استاد ایشان مرحوم محقق احسانی در رساله اله نص در تحرير و اصول داره ترتیب ابواب و اصول اصلا یک باب رو الملازمات نوشته این چهار تا مسئله رو جدا کرده یعنی مباحث الفاظ رو در اصول غرید این چهار تو مباحث اباورن دیگه این چهار تا درس مقدمه و ذ2 اشتمانه از مساله ناهی درباره در در مساله نواجی اما در, هم در الفاظ همراه سه تا شو اوامر ایشون نواوی هم هم تو الفاظ مباحث الفاظ مرحوم محقق اصفهانی البته این چهار تا رو جدا کرد مثلا المرفس السانی فی الحصول مثلا بغض اول در اساس الفاظ درته الفاظ مرحله سانی و ملازمات اهلی این چهار تا اصلا جدا آورده ایشون اون وقت اون اختراع یکی داره چی چی در اصول دارن کرد اسم خوب دیگه دارن بیان مثلا چی از جدید اصول جدیده نصیبت جدیده چیز دارن مرموم حقیقی چهارمشان رو برد پسمش رو ایشان مرموم حقیق اصطانی یک بخص مستقلی گرفتن این چهارت بخص رو که مرموم حقیق این کاری تفسیر استاد اینه از اون مطلب و رضا اون نصفش عقل نظری نصفش حکم شرعی، عقل نظریش تلازم بین مقدمه و زل مقدمه حکم شرعی ظلم قدم واجبه. مقدم واجبه نتیجهش پس مقدم و واجبه مسئله مسئلهی ای که آیان دارن اما ما ما خودمون مسئله مقدم واجبه اصلا زاویه دیگه مسئله کردیم زوایی خارج شوالایی ما بعد ایشون میپرمون خیلی خوب ایشون سه ادراک عقل رو میدونن ظاهر عبارت ایشان اینه که اصلا ایشون عقل عملی رو قبول ندارن مثل استادشون میکی به نظر یک درجه پاییتر از استاد برمه معقی اصطاقی معقی ادراک ادراف بلا عقل بقیه اینجوری ایشون و اون گرستم اما اما استاد داره اون دیگه ادراف بلا و از مسئله از مسئله است من چون این رسایه بحث خدمتیشون نبودن و در بحثه اصولی یعنی بحث ب اسم مشاهر دانشونه این بحثا یادم نمیاد چی بحثی ما همه را از تغییرات میم، فقط بنده و شما عادت ایشون واجد تفکر چیزی الان نمیتونم بگم از درس از زبان ایشون حالا به همین مقداری که الان در کتابیشان چاپ شده در همون مقدار فعلا تو میکنه اما القسم اول این قسم اول رو اصطلاحا اسمش گذاشتن به اصطلاح قاعده ملازمه در سلسله ال ال دیگه ایشون عنوان نزده این میدونم این مبنی ایشان رو میدونم فرصحیح غیر غیرمستلزمند صبوت الحکم شریعی ما اگر مسالح رو پیدا کردیم البته ایشون در اینجا ارغت تکون و المدرکه و المدرکت و قلع اقل مضاهمت اشکال دارن بعضی جاها اشکال عدم ادراک داره نه تزاهم که اصلا ما رایی برای ادراف ملاکات نداریم و الا تقدير این که ادراک بشه این عباراتش کمی همینطوری مرتب نیست ولی عقل لا يمكنه به جمعی جهات المسائل و المفاسد در مزاحمات و, و موانع راسته خلاصش اینه که یا اشکال بکنیم که ما احاطه نداریم یا یعنی ملاکات رو درست درک نمی‌کنیم یا اگر هم درک می‌کنیم مزاحمات و موانع و اینها رو احاطه به اونها نداریم چرا در مقام خود اصلا هست خود هست که ما فهمیدیم منباب مثال منباب مثال برای ایام پرتغاله ایام پرتغال خوردن خوبه خب ممکن برای یک جا که باشه احاطه ای بو نداریم مثلا برای پرتغال خوردن برای این کلان بدن خوبه اما ممکن برای یک ای... مثلا میگم بردت قضا آدم خوش شب از عبادت خوابش نرسه یه مزاهماتی داره در مرسل, مرسل مثال مسال مفاسده نه بعد ایشون میفرمایم که این مطلب درست نیست و اینم از روایات ایشون استفاده میکنه میان و هاول قرص قدر القدر الوسیقن من قولی علیه السلام ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه و الاراء ایشون فقط به همین جا روردن ان الله لا یصاب بالعقول دین الله لا یصاب لیکن روایت تکمل زفه بالعقول الناقصه و الاراء الباطل خوب نیست مثلا که ویلون در مسلیم نخونه ویلون در مسلیم شد عبارت اینشان این نبین الله لا اصاب بالاقود این بباید تکرمه داره از تشبه سندی هم داره خیلی نقید در که داره نقل کرده از کمال دین صدو بعدن فهم اقومی هر انسان لیسی شیع اب ادم دین الله رجال. این اقوم رجال هنم چون در رسائل شیخ آمده ظاهرم این که اصلا یه بوده. در خود این کتابیشان معقل کتاب که چاپ کردن در صفحه 26 نفره لب نجد حال در مسابر حدیث اصلا این نیست تو روایات نیست اونی که هست لیسه شیعان ابعد من اقول جان من تفسیر قرآن این هست نه من الله من تفسیر قرآن هست این دوگومی که ایشون روزن که از این دو تا حدیثه اصلا دومیش که حدیث نیست اونی که جای خودش اولیشم ایشون ناقص نه این دین الله نایو صاحب بالاقول نیست بالاقول ناغسته والآراء الباطله والمقاییس هم ادامه داره من همه همیش نکردم کردم منصوب است از حجات خالی از اشکال نیست این وضعه به قسمه نمیخواستیم منابس شده این وقت و بحثمه الله <تصال> <تصال> و محمد